اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون از تقول للمؤمنين ان يفتيكم ان يمدكم ربكم بخلافة آلاف من الملائكة غرزنیل تصعروا وتكفقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمجدكم ربكم يمجدكم ربكم بحمشة آلاف من الملائكة بشوين وما جعله الله إلا بشرى لكم ومتقم إن قلوبكم به وَمَنْ نَصُّ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ رَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الْعَجِيمِ وِالْصْيِلَادِ الرَّحْمَنَ الله قال شبهنا تُخْرَتْنَا اللَّهُ بِبَدْرِهُ وَلَمْ تُخْرَتْنَا شبه كريم زلي بودي ذات الدرجة السادسة ممتاز أليس هذه النقطة منا كليلة تو هذه الدرجة التاسعة الله لعلكم تشكرون أن خدمة خديك شكر مدار آیتی باید نوی کنید اینکه امدال کنید سمارا وقت بشوما باقین ازار حت پرشتگان مونگری برائیت بود بای ایس در میدان کنید رسیل علیہ السلام خلاف صحابرہ کو گفت تر جنگ تری خواهی. الله تعالا به بنابر الاستلاف مبوده که حذار نباد. الان آمده من حذار بریشته بوده است. اگر حذار و حذار الان غمگی آیند من به همی تعداد بریشتنی بریستم. تو شما دو کی به مممنون آیات و پایات نهی کرد شمارا. امدادی رابی شما. در و صدرالله بازی ندارد پرسته پرسته مان ناظر کرده میشمار آمدن استعداد پنجاه نشلوت بود به یک عدد چه تعداد؟ برای چه کسی میتونند؟ یکایت میتونند؟ لکی پیش راه شما که دستار و تاکو فعال شلب و غیر بدم بدهش کنی و بیاین اولش لشکریان دشمن من قوه هم حالا هر این جوس خلوشی که دارن خوالیتی که دارن جوسی دارن با همین جوس خلوشی که دارن یردت برو را برو فردکان ست آران دولای ملاحکا امدادتون این جزای اگر دار کردی و تقوی کردی و دوست من آمد با همین جوس خروشی که دارن تو خدا سباره امداد می کنه را کشواه به هم سد آن آف واسه ارچ ادا پرش ارد لباس علامت دار مطاببینینا اون لباس جنگی و لباس حربی جو آن روز ملبوط میشودن انها مطاببینینا ملبوط لباس کے بی بی که ایک بشعالت دید و برکت مدالت حال بشعالت با من جانب خدا یا زیدون حکیمت و خرانتا در امان طالعا زمین ما جا را هون امتاد و البلائکان بغی ایک که شما هم مطمئن بشعالت کی باکرام نیستی اگر محمد تعالیتا و با فرستگانتا زالتا رشتر شما آرام انسان همیشه با اسباب نظر انسان بیتر روی اسباب تا قلب شما مطمئن بشی مطمئن بشود فا اگر کفار کمتی دارن و نظامی بیشتری دارن نها با هم شما داری ورنه فتغ نصرت نیست مگر از جانب خدای عزیز که بدون انزال ملائک می توانا نصرت کنن حکیمه به ارسال ملائکه فات و نشرت هستاره خدا از نه امداد پرستگان یک بشارتی بود و برای اینکه دل ما مطمئن بشه که شما تنها نیست، و وارنه و نشرت از جانب خدای عزیز هست که بدون انزال ملاکم میتونه نشرت کنه حكيم به ارسال ملاکم پرستمی پرسته حكيم حکمت تغذیه میکنه. همه جا لا اللہ الا بشرا لكم یک وَجَئِدُ وَوَلِ تَتْمَئِنَّ قُلُومُكُمْ وَلِيَقْتَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ نَا پر اصطاد اللہ تعالیٰ مگر این کی غط کنا دواب بکنه خشمتی از کی کف کردن طرف یعنی یہ از کفار میں پر شد و هفتاد میں پر آنها شد اللہ تعالیٰ پر این ظالم ملائک را بیانی کنه یکی بشا دیگه تکنین قلوبکم دیگه ما جا له اللہ الا لیاقتا طرفا من الگی تاینکه غط کنه ریشکن کنه غسمتی را از کفار یا اینکه زلیل کنه با بخاطر شکست و اصارت پس باغی مانده برگردند در حالی که خائبین زلیل و خارن پس انزال و انداد ملائکه برای این حد اداف اللہ تعالی کرده که یه قسمتی ریشتن بشن و یه قسمتی زلیل کرده شون بخاطر اصارت و یه قسمتی برگردن زلیل و خار به مقصود نرسیده خائبین ممند زلیل و خار به مقصد نرسیده یا که رجوع کند اللہ بر سر آنها که بعد از مدتی همین اشیران بعد از مدتی از همین فراری ها اللہ تعالی رجوع کرد و ایمان داد آنها را که بعد اثمتی مکه ایمان آوردند. یا اینکه اذاب عذاب بدهد آنها را در آخرت به هر حال آنها ظالمه در وسط گفته شد لیس لکه من الامری شعون شما در این کارها پیغمبر هیچ نقشی ندارید نه در خط آنها نه در زلت آنها نه در بر آنها و نه در عذاب آنها این کارها اللہ سبحانه و تعالی متصرف و مدبره شما لس من الامرشون این به مناسبت ربط این آیات ما و ماباد من به خدمت شما عرض میکنم شما هیچ نقشی در این کارها ندارید هیچ چیزی از شما نیست نه ذلت آنها به دست شماست و نه قتل آنها قتل آنها به اختیار شماست و نه رذو کردن بر آنها در اختیار شماست و نه عذاب آنها در اختیار شماست خلاص لن تلق من الامر شلون الله تعالی این پرشتگان را امداد پرشتگان را برای این اهداف کرد حالا پریشتا آمدن انها را گرد زدن هفتاد از انها که کشتدون هفتاد اثیر صد باغی فرار کردن از این اثیرها کمین جمل حضرت عباس است داماد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انها را آخر خدا رجوع کردن انها انها را اگر می کشت خم کافر می مردن بعد از 8 سال دیگر این در سنه 2 هجری و 6 سال بعد الله تعالی اینها بر اینها رجوع کرد و اینها را بخش عظیمی از همینهای که در احود در بعد در احود آمده بودند الله تعالی بر اینها رجوع کرد و ایمان این آیت پس این امداد پرشتگان این منافر داشت و شما هیچ نقصی در این کار آمداشتی خالان از وزاره شان نزول وقتی میگفت پیغمبر الله السلام را اینها زخمی کردند و خون از صورت پیغمبر الله السلام میچکید رسول علیه السلام بعد دعای کردند الله تا را طرد شما هیچ اختیاری نداری بعد دعای نکنید بعد دعاییت پیغمبر الله السلام نیکرد الله تعالی را ممنوع کرد شما بعد دعای نکنید کہ اختیار شمانداری ہمہ قرار خدای عزوجل خود شی خودش وللہ ما فیس السماوات илत اللہ تعالی قرار دیتا ہے امداد بملائکہ مگر بوسرا لکتنے نقلوب قوم لیا کرتا طرف من الذين سفروا او یک بتروم فینکلبو خائبین او یتوبه علیهم او عذبهم به هر حال ایلت اول بود که فا انهم ظالمون این ها اگر هر حالتی بر اینها بی آید اینها حق دار اون حالتا چرا که اینها ظالمان به خدای کریم حق نمیدن و در مقابل پیغمبر خدا سب نه شدن اینها ظالمان بعد این کارها را اللہ تعالی میکنه بخاطرین اینکه اختیاردار آسمان ها و زمین است به خدا اختصاص دار در آسمان ها و در زمین خلق و ملکان و عدیدن پس این خدا می بخشد در کسی را بخواهد یعنی منیب را پس سلام نصیب یعنی منیب را و عذاب می دهد هر کسی را که بخواهد یعنی انادی ها را یعنی موت الالکفر میده پس خدا حرف چرا ندارد والله غفور الرحیم اللہ بخشنده هست گناه کفار را کتاب کنند می بخشد مخالف و مخالف صحابه پیغمبر اینها ایمان بیارن خدا می بخشد و جنت میدهد چون غفورت کفر آنها را و این همه شیطنت آنها را می بخشد و چون مهربانش و جنت هم میدهد بعد از جاد من مزون انفاق یا ایوها الذین آمنون اللہ تعالی فرمود مال را در راه خدا انفاق کنی لازا صدخاری نکنی کسانی که شما ایمان آورده اید لا تاکن الربا او آفن و شما نخورید ربا چند برابر عرب ها سودای چند برابری میخوردن هم محلت مثل که الان این بانک چند برابری اگر به موقع فرداخ نمید دیر فرداخ چقدر جریبه شخصش میکنن اونها به اینیه مثل امروز بودن اللہ تعالیٰ میگه شما در خدا انفاق کنید برای احداث عالی دین اسلام انفاق کنید و لحاظا چند برابر سندخاری نکنید و لا تاکلو الرباها اضعافا مضاعفتا انیس که اگر کم بگیر الربا درسته انیس چهو جریان دیرپرداخت اینها هر دیرپرداخت روی چیزی دیگه اضافه می کردی چیزی دیگه اضافه می کرد گفت مدت را اضافه می کنم سود را شما اضافه کنی سر موعد وقتی نمی تونن تا پرداخت کنن همین کار الله تعالی میگه سودخاری نکن واتقوا از خدا ترقیق تا شما کارگار بشوید در راه خدا انفاق کنی واتق النار التي ببین سودخار الله تعالی تحدید بسیار بزرگی میکنن به ترسید از خدا تا رستگار بشه سودخار مرتبه که به سودخاری عادت کرد دیگه حل مزید میبیند او هرگز از سودخاری دست میکشه. کشه خاطر اللہ تعالی تحدید می کند چون از آتشی که آماده کرده شده است برای کافری اونهایی که سود را حلال بدانند کافرن برای آنها خدا از عذاب را آماده کرده آتش به هنم را کفر می گفتند که انم البعو مثل ربا معاملات خرید و پروش مثل ربا هست یعنی اصل در معاملات ربا هست معاملات ربا هست دیگه معاملات را بر آن می کردن تشریح تقوی است اصول فوس اتیو الله و الرسول لعلكم ترحمون شما از خدا اطاعت گوش به فرمان الله باشید دوست فرمان و رسول باشید خمره اطاعت تاقش مورد رحم قرار گیری در آخرت بشارت اخروی فاره و الى مغفرت من ربكم از این دیگر فرعت و به بطرف مغفرت یا یعنی عمال نیتی سبب مغفرتان که از جانب جا رب شما و طرف جنتی که کم از کم ارض آن جنت آسمان ها و زمین این جنت با این همه امکانات آماده کرده شده برای متقینان اورائے که صحیح که جنتان متقی اعلان که از کس کو سر کی ثنا نہیں کرتا عوامر الہی را انجام میداد منحیات و سنن خوب کیا هستند متقین که جنت برای آنها آماده شده اللہ تعالی حالان متقین را بیشک گروت تشخیص میکند بروه أول الذين ينفقون في الشراء والذراء والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إذا كمتقين بسي دروه تسليما بروه أول عن آيه أسنان كخارج ميكولن در خصحالي ودر ذراء خوشحالند و مال و مطاش خوبه هم خرج میکنن و در زرر و فکر و ناداری و انکفالی اونجا هم خرج میکنن. هر حال آنها خرج میکنند در خوشحالی و در نراحتی و آنها فرو میبرند خشم را یانه یعنی این درجه دران و می که خشم خود را بر انسانها اجرا کنن نمی خشم خود را فرو نمی برن و آنها معاف میکنن از انسانات تخشیرات مردم را یعنی این حکامی که در راه خدا و کسانی که زردت دارن الله تعالی میگه اونا خشم خود را نشد به آنها فرور میبرن و لغازه آنها معاف میکنن از تخفیرات مردم و خدا هم دوست دارد محسنین را آنهایی که از تمیم لیکی میکنن آنها را الله تعالی دوست دارد میگم که داستانیه که حضرت حسان رضی الله تعالی عنهو کنیزی داشتن و اونیشان به خدمت ها چیزی خواستن بیارند که همون ظرف و همون چیز از دستش افتاد و تاسه هم شکست و اون شه هم زائن شد حضرت ایمان عسنا غذب گرفتین این که غضبش گرفت کنیزت چلاکی بود فورا خان و القادمین الغیب و العافین عن الناس ایچی وقتی میخاند و القادمین الغذ سید خرشد و لعافین عن الناس که گو بخشیدم بعد اضافه کرد و الله و حب المحسنین تو سید بجوش آمد گو تو آزاری آیات سیدها را نرم کند هیچی این واحه سرت ابلاغ بزرگه فریق بیان فریق اولا از متتین بیان فریق دوم والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکر الله انهای که وقتی گناهی انجام میده فاحشه مراد گناه گناه ظاهر فاحشه است خبر دیگران زیادتی باشه و میدن یا ظلم میکنن با جانهای خودشان که حق خدا را میکنن فاحشه است که حق دیگران ضایع و ظلم میکنن بر جانهای خودشان یعنی حق خدا را ظاهی میکنن به خدا که ضربه ای نمیزنن لکه قانون خدا را وقت نقص میکنن نسبت به خودشان ظلم میکنن اینها یاد میکنن خدا را یعنی عظمت خدا را یاد میارن که خدا ذات بسیار عظیمیه بونه هزار, بون هزار را مجازات میکنن عظمت خدا را یاد میکنن پس باری طلب بخشش میکنن برای گناههای های خودشان و جمله محترزه کیه که کی ببخشد گناه را غیر از الله را پروزن الله هست غیر از الله دیگه بخشنده گناهی نه امامی هست نه نبی هست نه ولی هست هیچ کسی این اختیار را ندارد که ببخشد کسی را یا نبخشد بخشش اپ گناه این اختیار الله هست و من یک سروزنو الا الله کیه؟ یعنی نمی بخشد گناه ها را غیر سرادی اتفیم و اینها اصرار ندارن بر آنچه که انجام می و هم یعلمون و بر آن گناه ها بینید گناه هر انسان می کند عزیزان من لیکن باید بر گناه اصرار نباشد سنگین اینه که انسان بر گناه اصرار ببرزد اونها اصرار ندارند بر آن گناه های که انجام دادند و هم و آنها میدانند می دانند چیز را می دانند که گناه کار بدی هست و استغفار لازمی هست و خداوند متعال غفار است آنها این 3 مطلب را می دانند گناه کار بدی هاس. استغفار بعد از گناه لازمی و این هم میدانند که خدا غفار است که مطلب را هم و لاک جزاء اُهمّا برای هر دو فریق فریق اول فریقی دو اینها این انسانها این انسان دو سپت رداره جزاء آنها مغفرت از جانب براب و با غاي کجاري زير و نه ما خوب اجر تحقیق دنیا بی قدخلت من قبل سننن و تحقیق گذاشته قبل از و اے نمونهای لذا سیرو فیل ار کنید در زمین اگر می خواهید کنید و برید بگردید در, در زمین او چشمان باز کنید اے مردم کیفکان آقبت المکذبین چسود انجام تقزیم کنندگان آن آئی که انبیاء را کردن کتاب آرہ تقزیم کردن کامت را تقزیم کردن برید انجام مکذبین را نگا کنید لہذا اے مومن انچان سباہی باست سبر تا تاریخ ابو جاله ها بید خرا برسد یا تاریخ اینها که سطره دارند بر مکه و در شهرهای دنیا تاریخ آنها تکمیل بشه خدا در غوالدان جهنم جم خواهد کرد ها بیانون این همه مزامینی که بیان می شوان این مزامین بیان عظیمی هستن برای انسانا و هدایت رانمایی کاملی هستن علما همه را نمائنی کنن و موئذة للمتقین موئذة حسن برای متقین موئذة اون سفر رانی را که انسان را محساید برای عمل کنه اینا نسیحت هستند برای متقین یاده مدون جاستانی لا تهیلو سوس نشوید ولا تهزنوا ام مغموم هم نشید بر زرب و مفات وَأَنْتُو مُهْرْ آلان شما عطمان آلائی در آخرت این کنتم مؤمنین اگر شما مؤمن باشید شما در آخرت آلائی لہذا سوست نباشید که خوب ضربه خوردیم گوش مسلش سوست نشید اللہ تعالی لاته اینو لاته اینو از وحن است وحن من سوستید چه دستفاد دیگر است سوست بیشه غلبان دستفادش هم از کار بیفته نه لاته اینو و لاته ازنو هرکی از دست شما میره انسان شهید میشه مال و مطا میره برای آنها غم هم نکنید چرا و انتومو لآلون شما آلائید در آخرت اگر مؤمن واقعی باشد، این هم سچ کنم کارهون فقط مسئله کام کارهوم مثل او. اگر بیشمار رسیده زخمی، سبحان الله. اگر بیشمار رسیده مؤمن در اوج زخم. که ہفتاد نفرہ شما شهید شده تو جزاء سخت سخیھا حکمت فلا تللا در این زخمان یک حکمت بالغ است لیکن خوف نکنی کنی شما چرا فقدمت القوم کرهم مثله بدرستی که رسیده به مشرکین در بعد زخمی مثل زخم شما شما تنها ہفتاد شهید دادید یک هم ندادید آنها هفتاد کشت هم دادن و سبحان الله هفتاد هم دادان. در میدان مقابله میخواد شروع بیشه دیگ دیگر یہ خاطر اللہ تو تعالیٰ میگه بخاطر این که از شما عفقات کشتش دو دے بخاطر این قرب و این زخم و این زربا شما هرگز ناراحت نواشی ایم سسکن کرهم جزا شخص فیحا حکمت البالغا فلا تخافو چرا قدمت فلقاوم کرو مثلو و تلک الایام و این روزعائی غالبیت و مغلوبیت ما متصرف میکنین این روز عرب بین مردم زای نوبت غلبیت شما مغلوبیت آنها این دفعه هم نوبت غلبه آنها بود مغلوبیت شما لغا این ایام نوبتی هستن معمول خدای همینه معمول ما غالبیت و مغلوبیت این ایام غالبیت و مغلوبیت را ما منخرف نکنیم بین مردم چرا؟ لی عالم اللہ الذين امنوا حکمت را بیان میکرد اللہ تعالی ان واعده تو کہ بداند خدا ان های را کیماند بداند خدا یعنی چی یعنی خدا به جهان ظاہر کرے کہ کیا ایمان داران از ضرب و از شہادت نہیں ترسن اگر بنا باث کے ہمے میدان آف فتح ازان شما باشد و شکست از طرف باشد تو امتحان نمیشی همه مردم میگن در این مارک مرگ نیست غلبه غلبه هست باشه یک زمانی تعداد از صور شہید تا اون مقامات عالی بخاطر خاطر ہے تاک خدا ظاهر کنند مومنین را اوناک مومنن و دیگه حکمتین که یا تخدم انکم شهدان اتخاذ کنند افتمات تعدادی را شهید کنند مقام والا شهادت برسانه اخی این مقام بدون موردن که گیر رنیا دیگه شما در میدان آتا کشک بشید و بمقام والا شهادت برسید دیگه حکمت اله این بود اولاً که شما هم زخم دیدید اگر آنها شما زخم چند ببرابر دیدان با دیگر اللہ تعالیٰ این شکست را آور بخاطرین که ظاہر کنن مومنین را و بخاطرین که تعدادی را شما بدرجه را فی شهادت او خدا هم دوست ندارت جمله موترزه جواب شبست غالبیت آنها بسبب محبوبیت آنها بود آنها خدا غالب کرد ہم ظاہر شهید کردند. بخاطر نام محبوب خدا بودن اللہ تعالی پر بودن و اللہ لا يحب اللہ عالمین اللہ تعالی ظالم آر دوش نداره غالبیت آنها بخاطر محبوبیت نبوده کنها محبوب خدا اللہ تعالی دوش نداره ظالمین گا خب علت چارمین لیمحس اللہ الذین آمنون شاف کند مومنین را. این سهادت این معارکه برای تمحیث هست تمحیث را حضرت اصطاز مانائی می کردن را اتفاق کردنه ببینید یک زر پیرا می خواهم نشیف کنن خلا امروز ریکاست و نمی دانم دیگر چیزی می مالم اون قدیم رسائی ها و دیوانی ها می خاک تویش می کردن و با ایک چیزی خاک می مالیدن خاک تویش زرک می کردن و می مالیدن می مالیدن می مالیدن مالی دیگر هر اثری داشت اون بلا رنگی اثری کاملا صاف می شد تمحیس همینم حضرت اوستاد رحیماللہ معنی می کرد و همین که هم مثال میداد داد که تمحیس اینه اللہ تعالی این مارک را آه این ایام را مندابلوها بین الناس برای لیال لی عالم اللہ لیت ودگلی و ودگلیو محس اللہ الذین آمنو خدا این ایام را متدابل می بین انسانها غالبیت و مغلوبیت را منخرت می و می همیشه برای یکی تا پاک و صاف کند ایمان آورد چون در مسائب تسکیه اعمال و اخلاق می ودگا یم حکل کافرین او کافر حارا بحلاکت برسانه یم حکل کافرین ها کافر حارا بحلاکت برسانه چی توڑ خب اگر این دپا هم کافر هاشکستن خوردن دو ہیچ بردی نمی کردن دو مرتبه انہ اصلا بمیدان نبی آمدن ان یک بے صلاح رام کردنی کافره کبی میدان بیا دو از دست خودش خودشمو اگر ہہ میدانہ حاش کہفانی شد کافر میدان ننیام شما توجاہ بدرے شاادت میرسکیھ این نخاطر این این نوبتی ہے کہ کافرہ یہ چکار پرار نکنرم بیا ان تو میدان تظار بهای کاری خود را بخورن ن دلیری وہ برای کطی کا از ذہات تخاللق کوکن۔ اما سبت من تدخل الجنة آیا شما تصور دارید که بری تو جنة حالاً که یقا حالیه و لما به هنوز حالاً که هنوز ظاهر نکرده نا خدا نارک جغاد شما و ظاهر نکرده نا نارک سبر در جغاد دارا شما مقدر بدون امتحان و از مشوری تو جنة تو من اثر خدیرم بدون اینکه خدا هنوز مجاهدین را به نمائش نگذاشته آمالانها را و صابرین را هنوز به نمائش نگذاشته شما میخواید دیری جنت حالا این تصور از زمان خبیلو کنید دو منداری در جنت حالا که ظاهر نکرد الله تالانها را که جاید شما و ظاهر نکرده را که صابرند در جاید ملامت بر این حضام هست خوب چه آمیشی بودی چه آدم مرد، حتی آدم پر مرد، چند فانه پر زخمی شد. تا جایی که سرور کائنات دو دندانه سنیه مبارکی او از چهار سنایا، سنایا چند سن چار تھا. خود سن. خود دو تا است؟ کاریا؟ چهار تا. کدوم کدوم آن است؟ خوب، از این دندانهای سنایا رفیع پاک الله علیه سهید شدند. او از چهره مبارک خود دو حلقه هم دو چهره رسول پاک و سلام رب لبه مبارک هم زخم برداشت و از چهره پیغمبر صلی الله علیه و آله خون سرازیر بود خون میچکی اون های خود هم چهره رسول چهره رسول پاک صلی الله علیه و آله کیجاست بود راستہ بود بیرونی سوار او دندان دندار مبارک شهید حالا الله تعالی میگه قابل مر داشت در بدر شهید شدن چاردن نفر بودن یاز باقی هاک که بسیار پتایل شهادت بیان شد جنها تمنع کردن که دیگر میداری نی بود که ما خوب شهید بسید اللہ تعالی میگه برای شهادت خود شما متمنی شدی اشک شهادت در سما بود حالان که شهید شدی چرا این طرف اون طرف میکنی باب باب باب میکنی وَلَكَدْ كُنْتُمْ الموت ملامت بر بَرْا اِنْحِزَامْ به تحقیق بودی شما آرزوی موت شهادت داشتیم من قبل انتل که قبل از دیدن آن موت یعنی از شبب موت فکر رایت موحو اکنون شما اون موت را دیدید اصواب موت را پشت خالد با اصواب تیرانداز تیراندازی نکرد و شمشه زنی نیکرد از زلو کسان دیگر زرد بس یار مختصری طول نکشید که هفتاد مجاہد راز کشید اندر میدان شما دیدید اون موتر بات سے وانتم تنگرو شما نگانی کردید در عالم خواب و تصور نبود سوست نبود شدید خوب زمون ہے انچکه شما عرضو کردید رسید سحادت و سحادت شما رسید دیگه الان چرایت حواثباختهی دو چرا این طرف این طرفی طرف ای. چیزی که حواثباخته کر صحابه را موت شیطان علیم اعلان کرده ان محمد قد قتل دسیار سراشیمه شد صحابه و حوصلشم تک شد وفا فرار به طرف کور بگذاشت بین خاطر اللہ سبحانه و تعالیم نیده این که دیگه نشد ما شہادت طرفی اصحابی قسمه مشتاق موت شہادت بودی چیزی که شما اشتیاق نداشتید آمد دیگه الان چرا میگن نال ان لا حافظ کجا آمد اینا شکایت کجا آمد وعده این که وقتی گفتن ان محمدن قد قتل بسیار سراقیمه شد اصحابا سراقیمگی اصحابا به اندازه‌ای شد که دیگر حد مرنے نہ دا اللہ تعالی میگه او تم جهاد کو نیت بخاطر محمد صلی الله علیه و سلم کیا بخاطر رب محمد اگر بخاطر محمد صلی الله علیه و وسلم جهادش شما هات فداکاریش شما هات و ندای ان محمد هر قتل کوتل شما را سراخینه کرد و حواس باخته کرد و میدان را گذاشتید و فای فرار به طرف کوه گذاشتید گذشت محمد صلی الله علیه و نه خدا هست خدا کی که از موت از شهادت او باشه باشد او رسولی هست و قبل از او و رسول زیادی در دنیا گذاشتند اون رسول ها از دو راه دنیا را ول کرده یا راه شهادت بوده مثل یعیاء زکریا یا, یا, زکر یا راه موت بوده مثل موسیل علیہ حضرت انبیای دیگر لہذا این هم توجیه نیخ برای شما نہ شہادت توجی بر ان ہضام شما ورنائین کہ محمد ان محمدن قد کوتے یہ خاطر اللہ تعالی نے فرمایا برای برائے مومنین اس فاطمہ ما قبلاس وما محمد الا رسول انس ابن نظر در ساعتك زاغت فيها الأبشار والبصائر وبلغت القلوب فيها الحناجر وهين فشا في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل وقال بعض الظعفاء المؤمنين ليتلنا لنا رسولا إلى عبد الله بن عبين فاتح الظعفاء غفتا ايه كشح اصبرتش عبد الله بن عبين تأخذ لنا أمانا من عدد سفيان بره عبد الله بن عبين اماني عشق صفيان يا بقيرة قال الناس من أهل النفاق إن كان محمد قد قتل فالحقوا بدينكم دينكم الأول دي بريد دين من وشيد وإن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل وما تثنون بالحياة جوف حضرت انس، این حریق یک خرقی زد حضرت اناسین هر پهاره گفت چه امکان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل وما تسمون بالحياة بعد رسول الله شما میخواهید این زندگی رات شکر کنید بعد از رسول پاک صلی اللہ فقاتلوا على ما قاتل عليه. این مردم قتال کنید بقاتلون هدافی و هدافی که پیغمبر قتال کرد و موت على ما مات علیه شما اما هم بمیل بر کاری که پیغمبر وفات کرد این کرد ثم قال اللهم انی آتدرو الیک مما قال هاولا وابرو الیک مما جا بیه هاولا ثم شد بشیکهی فقاتل حتی کتل رضی اللہ عنہ تو را کرد و والمؤمنون صادقون ثابت قدم ماندوا امل مومنون صادقون الموقنون ف من هم ما هو با پیغمبر ثابت کردم مانده و هم من کان بعیدنن هو بكر و علي و طلحة و ابو الذي جعل نفسه طرفا دونه فكان يك عليه النبل وهو لا يتحرك ابو قدر پیغمبر کرده بود و به پشت او می خلاصة إن كإن محمداً إن قتل محمداً صلى الله يجبعفاً في دينه لأمرين لأن محمد بشرا لأن محمدا بشراً كشاهر الأنبياء وهؤلاء قد ماتوا أو قتلوا لهذا شما شرا حوات واقصة شدير بخاطر إن كإن محمداً قد قتل وما محمدون نش محمد إلا رسول خدا نش لازموت وقتل فاقباشات ورسولي هاش بیان القرآن من خدا نیست که از موت و قتل پاک باشد گزشت قبل از این پیغمبر انبیاء ازیمی افا اماتا اگر پیغمبر بموت تبعیق و پاس کنیت او قتل یا در میدان نبرد شهید بشویت انقلبت و ملاقا بکم محل استفام انقلبت و ملاقا بکم هست اگر بایغمبر به موت طبعی خود یا به شهادت برسه آیا شما بر میگردید و پشت سر؟ و هرکت برگردد علا عطبهی به پشت سرش تو فلن یه دور اللهشه هرگز خدا را ضرب نمیده و سیجل الله و شاکرین و خدا آنهایی را که شاکرند به سپاس بزارند آنها را که خواهد داد اونایی که حقشناستند شاکرند ترغیب جغاد شما از جغاد بی خاطر فرار کردید که میمیرید مرگ یقینیه امکان ندارد از مرگ کسی پناوی گیری بخاغت از جهاد و از کتال بخاطر این که انسان می میره و مرگ می آید مرگ چه امروز باشد چه پردا باشد چه از کتال چه غیر کتال باشد مرگ می و از مرگ کسی هیچ عنوان نمی تواند نجات کنه و ما کامل نفسنا تموت الا الله ترغیب الالجاد امکان ندارد برای نفسی که موت بیاید برای نفس اون نفس بیمیرد الا بیذن الله مگر به امر خدا کتابم معجلا مکتوب شده مقرر شده اغب و جلو نمی شود کتابا مؤجلا اللہ تعالی برای اجل هر انسان مكتوب کرده که در آن کتاب مؤین شده و تعین شده در آن تقدیم و تاخیر نیست پس برای چه حسرت نی خوری برای این شهده اللہ تعالی در همین میدان مقدر کرده که زندگی آن آتی همین میدان برای خدا تمام بشه تسما اگر طلب دار دنیایی که دنیا به هر کس طالب شمی رسه به شرط مشیت و من یرد سواب دنیا نوتی منها اونم به شرط مشیت و هر مقداری که ما بخواین و هر که اراده آخرت کنند مسمیدی مورا از آن آخرت مثل نجد شاکریم و ما شاکریم را جزا خواهیم داد آنهایی که سپاس بذارن و در میدانهای های نبرد اشتقامت میکنن اکنون ترغیب هست خلاصه این که مثل انبیا و اولیا بجنگید و در برابر دشمن سوست نشوید بلکه مثل آنها دعا کنید دعا کنید بر مبارزه ادامه دهید و من نبیین، مقصد این آیا ربش من ارش کرده. شما سوست نباش مثل و, و در مسیر حدایت جان برید و سوس نباشی اللہ تعالی میگه چقدر از پیغمبران کتال کردن با دشمنان خدا همرا با اون پیغمبران بودن ربی یون کتی رب زیاده انبیاء در راه خدا کتال کردن همراه با آنها ربط کثیر هم بودن این را پرستان زیاد فم آواهانو، صحت نشودند که دست زیاد بکشن، به خاطر اون مصاحبه و به خاطر اون کشتهایی که بیان خارشید در راه خدا، وما ما ذاو فو زیت لام نشودن عملان، و عملاً ما سکانو و تزرع هم نکردند. در برابر دشمن چقدر نوی با رب پرستان همراه در راه خدا کتال کردن که هرچی به آنها رسید این ها ضعیف هم نشدن قلبن و نه در برابر دشمن به تزر رو یعنی تا آخرین لحظات حیاتی آنها در مبارزه بودن هرچقدر شهید شد هرچیقدر کشته شد نه آنها ضعیف شدن نصف شدن و نه در برابر دشمن تصرف کردن تا خطرات غطرات خون خود در راه خدا جواد کرده شما ما بعد همین طور باشید حب و صابری تعالی دوش دارد چینین شب را او نبود چخن اون انبیاء و ربانیون در میدان کتال مگر این که میگفت ربنا قفلنا بنا. شما هم مثل اون ربانیون و شما مثل اون انبیاء بیایید در میدان و از خدا معصرت کنید نبود شخن این انبیاء و رب پرستان مگر این میگفت ربنا ای ربا ای غفر لنا بنا ببخش برای ما گناهان ما را در اشتباهات ما باز یعنی بعض شکار در اشتباهات ما آنها دعا, دعا کردن که اغفلنا دنوبنا و اصرافنا و زیادتی ما که در کار داشتیم تو مضبوط نگه دار کدم های ما را اونو صد ما را برکم های کافر پس شما هم باید مثل اون رب پر اختان و انبیاء در میدان بیائید و ربنا خیل لنا ظنوبنا و في فی امرنا و طب تقدامنا و انصرنا القوم القافرین این دعا ها را بکنی دیدائیں چا از ما چرا کسکس و چرا, چرا فلان و چرا فلانی نار پارک چنار بگذاری؟ اللہ تعالیٰ واقع و حد را خیلی تحلیل کرسیبا و درست سقط می دهد باید سکایت که ببینید در این میدانها مردان مبارش سمیشه خود را مغاستر حساب کردن و از خدا معذرت خواهی کردن فاعتاهم الله و ثواب الدنیا و برکتین استقلال و دعا انایت کردون رب فرستان خدا جائزه دنیا را نصرت و فات و بهترین ثواب آخرت را که جنت باشاد بهترین ثواب آخرت را همدان ها داد والله حب و المحسنین اللہ تعالی دوستارد نیکو کاران را انهایی که اصمیم قلب نیکی میکنن زز یا ایماللدین آمنو ایک سانس محسن اگر اطاعت کردی کفار را الذین کفروا را حضرت علی رضی اللہ تعالی می م... فرماد مراد از الذین کفروا منافقین هم حبداللہ ابن ابی باشی صد نفر برگشت لحظا اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی قرآن میگه کافر میگه. حضرت علی برداشین که الذین کفروا منافقین هم سرگیب از مشوره کفار اونه تا کسانی که شما ایمان آورده اگر اطاعت کردید کفار را سمره اطاعت کفار چیه؟ یا دو کم حالا آقابه کم اینا شما را رد بیکنم به پشت سر کافر و سمرتن و نتیجه ردت اینه که فتن کلب شما خاصر میگردید از هر جهت هم در دنیا خاطر میشه هم درکر غرض که آنها از هیچ جهت دست شما از هیچ جهت دوست شما نیست بلی اللہ مولاکم بلکه مولای شما دوست شما ناصر شما مددگار شما الله وہ و خیر و ناصرین اون بهترین نصرت کنین داست شنلقی نمونه نصرت ما میانداتین در دل, دل, دل کفر روح بشمارا سبب شرکی که بابه بما اشرکو بالله بقاطر ایک اون عشری کردن با خدا چیز حیرت خدا برای شرکت آنها هیچ دلیلی نازل نکرده بقاطر ایک آنها با خدا شریک کردن کسانی را که الله برای شرکت آنها هیچ دلیلی نازل نکرده نا عقلی نا لقلی نا بخاطر شیر که اللہ تعالی میگه رو بشمار من در دل آنها میاندازم و مأوام همون نار شمر و خویم بدبخ سات توی جهنم هستن جایگاه آنها جهنم هست و به سمت و ظالمین و بدترین جایگاه ظالمین جهنم هست آنها که حق علویت اللہ را به دیگران میده هم ظالمان ظالم که که را میگن که به خدا حق نمیده به صاحب حق حق نمیده بنا ظالمن بخاطر این که حق خدا را که الوهیت و عبادت او را تصدیق قرار مغلوبیت مؤمنین همونه که عبدالله ابن جبیر فرمانده این 70 نفر از مجاهدین ابن جریر این آیه قبل از ترجمه ولک قد صدق کلمه درباره ی آنها روایت ابن جر جریر از سدیر امی خان لما برز رسول الله الی المسلمین بهوت امر الرومات فقامو به اصل الجبل وجود وجوه خیلی المشکی اصباحای خالد هر کنجا مدینه منوره وله حاصل وقتی آمدن اینجا از اینجا گرفته تا آخر کوه احد که نوستب کشیده بوزن و در برابر همین رودخانه که می آمد و اینون در ره گردنه که از اینجا دیگه میتونستم پشتنم پیغمبر علیه السلام در این میدانی آمد حضرت پیغمبر این حت پنجه نفر تیرانداز را بر این گردنه مستقر کرد که این از سوارانی که احتمال است از پشت بیاین شما از ما دفاع کنید حضرت فرمود که لا تبرهو مکانکم هرگیز شما جای خود را ترک ندهی این را ایتمونا قد حقیمنا اگر شما هم دیری که دی ما شکست خوردیم تو فا اینا لن نظال غالبین ما مکان و مکانکم بر پرمود ما همیشه غالب نیمانیم کازمانک شما در همین پشت سر ما مستقر باشید اما علیه این بر این تیر انداز غار کرد و فرمانده کرد عبدالله ابن جبیر را سمه انت طالح ابن عثمان صاحب لبای مشرکی پرچم مشرکی سه هزار دست طالح ابن زبیرو پیغم اندر در میدان احود این طرف احود, ان طرف احود و و ان طرف این ہے این طرف کوئی احود با پیغمبر و صحابه اون طرف گوشش با مشرکین ہے وقت میدان اینجا همون چطپکو ہے وگردنی دارد یک سرکو کو بیرودخانه وصله هیچ راہی نداره بین خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام عبداللہ ابن زبیرؓ را کا رئیس تھا طلحہ ابن عثمان طلحہ ابن عثمان قریشی هاشمی از حضر نزدیکان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام قریشی اماں تو حاشمی اماں این صاحب لیواء مش پرچم مش کی رہن بد بود به میدان آمد و نزدیک شد و پیام معشر اصحاب محمد او جماعت اصحاب محمد شما اینقدر دارید که الله یعجلنا بسيوفكم الى النار فوری میبرد ما را با شمشیر شما به آتش و شما را هم فوری میبرد به ما به جنت آیا هست شما کسی که فوری ببرد او را اللہ تعالی بسیف من الیل جنت با شمشیر من خدا او را به جنت ببرد یا خدا فوری ببرد ما را با شمشیر او به جهنم. این تنزی و ای بود که پرشم دارد شما فکر میکنید که شمشیر شما اگر بر ما بخوره ما را خدا با شمشیر شما به جهنم میبره و اگر شمشیر ما به شما بخورد شما اعتقاد دارید ای محمد که پوری شمشیر ما شما را به جنت میبرد حالا آیا کسی حس تو میدان که یا شمشیر او من برا به جهنم ببرد یا شمشیر من او را به جنت ببرد کسی این اعلان را کرد فقام اليه علي ابن ابي طالب حضرت علي ابن ابي طالب بلند شد فقال گفت والذي نفسي بيده لا افارقك من سجدا نمیشم اینم از طنز رنج نبرد و گفت حتا که زود ببرد تو خدا با شمشیر من به جهنم یا زود ببرد مرا با شمشیر تو به جنت و نامه گفت من همش تو جدا نیستم یا باشمکیر تو خدا من به جهنم میبره یا باشمکیر من تو را به جهنم نیبرد حمله کردن حمله که کردن فَذَرَبَ عَلِيٌّ فَقَتَ رِجْلَهُ حضرت علیک ضربه ایت زد یک فاش غد شد فَسَكَتَ پشت سرفتاد تو فَكَشَفَتْ عَرَتُهُ لحظه نخف تو توی لانک داشته خرابها پشت سر که پایش غد شد پشت افتاد دیگه تمام شرمگاهش نخف شد توی گفت انشدو کالله و الرحیم یا ابن عم تو به خدا و رشتداری کتن میدم تو تر امو یه بیشتر نزن فترک و عزت الیور را تر کرد فکبر رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فعمر تقویر بزرگی گفت کار اصحاب علی لهو همراهان علی به علی گفت ما من کن تو چه زاله چرا شمشیر دیگری بر گردنش ندیدی که کارش تمام بشه پای شقت کردیو گذاشتی کار این ابن امی ناشدنی هی نه این کشف آرزو فتحیت پندرگر آموزم من کشم داد وقتی که شر مبارز لخت شدند و پس که شر افتدگ لخت لبسد من حیا کردم است. ثم شدت زویر ابن عوام و مقداد ابن اشرف علی المشرکین این دوت مبارز یکی زبیر ابن عوام و یکی مقداد ابن اشرف حمله کردند در مشرکین و سمت هر مشرکین پاره شد. فحزمهم دون نفر ونار اشکاروا وهملا النبي صلى الله عليه وسلم اصحابهم فحزموا باصوتهم من طرف قد دار مقابل پیغمبر پیغمبر بعد دسته‌ای بود در برابرش ابو سفیان بعد دسته‌ای بود رسول الله صلى الله عليه وسلم خبران رسول حمله کردند به ابو سفیان وهمرانه فلما رأى ذلك خالد بن الوليد وهو على خيل المشركين حمله فرامد خورما تو فن کم از این طرف تیرانداز غاب بودن خالدان در مواجهه اینها بود، خالد اینجا با اتلافارها حمله کرد، تیراندازها نفر چند تیراندازی کردند که همه را کالا قطع کردند. یحدغا بس بس کہ تیر بازی بر سر این اسواران اینها به جلو نتوانستند بیان عقب کشیدن ابو سفیان رسول اللہ شکایت دار در واسطه تقصیر رفت و معنا و معراب به اصطلاح هر سپ با اولین حمله شکست خورد خب که شکست لما نظر الرومات الى رسول الله واصحاب کی جو کہ اکثر المشکلین ينتهبونه فبادروا الغنی اینها دیدن که اونی که در مواجه دسته اول که رسول الله بود ابو بود اون هم شکست خوردن غلبی هم شکست کردن این محصره هم شکست خورد. خصیل اشکر مستقر یک دو سه این طرف صحابه بودن تیراندازه در مواجه اصل بودن و حضرت علی و نقداد و آنها در وسط او رسول پاک صلی اللہ در آخر بود سطحی که تقریبا به اتصال کوئی احود قسمت خلا همین طور که من نشستم راست رسول پاک در قسمت چه اول جنگ از غلب شروع میشه همیشه جنگ آتیستونیه سه قسمت میکنن میمنا و میسرا و غلب جنگ از غلب شروع شد جنگ اول همیشه قانون اون زمان این طور بود یک ایک نفر به مبارزه میخواستم دو نفر سه نفر وقتی در میدان از طرف این خوش دیگه حمله بشد تیراندازی نبود سنگر نبود جنگ اون جنگه کند کند رو برو اولین مارکره که حضرت علیف ضربه زد پرچم پرچندار مشکیم را و چنان ضربه که دیگه پایش آسمه شدند و لغت لغت دومین و حمله که حضرت مقداد کرد و زبیر ابن عوام انها شکست کردن انجا هم که مواجه رسول اللہ سے برو شکست کردن خالت که پرماندهی اصل را دست این رومات که بالای کوح استاد بودن چران تیر اندازی کردن این حرام شکست و میدان خالی شد کفار این طرف رابط مومنین این طرف بودن شروع کردن تمام اصاسیه کفار سر جامان شکست کفار شکست پرد و رب به جواباری اصاسیه کفار که غنیمت هست این رومات اینجا اختلاف کرد. اختلاف تا لما نظر الرومات لا رسول اللہ و اصافی جوف اشکر المشروطین ينتهبونه بادر الغنیمت فقال بعضهم لا نترک امر رسول اللہ فانت لک آمکم فلحکو بالاسکر فلمہ را خالد خالدی اتبابت تیر اندازہا از ان چھپا پائیں رفتا اول ہم پر اس پندہ زیاد دے دیئے خالد بیت کبل ہے این که در مواجهه منان هم رفتن پاییم از این گردن هنجا دیگه پاییم میدان راست هم که مردم میره نگاه می کنه اونکه برم پاییم دیگه این طرح پشت خالی, خالی خالی خالی دید که این ها همه رفتن صاحقی خیلی یک پریاد زد بین سواران کن ثم حمله على اصحاب المدی فلما رال مشرکون مشرکی ها که اون قسمتا غلب و میمن اونجا بود اون دیدن که بابا از پشت خالب با لشکری حمل آور شده این ها که آمدن انجا روی این گردنا پرغمبر مستقر کرده بود حشن فرمانده بود با همون فرمانده عبدالله ابن جبهر این هشت نفره اینجا کشتن شهید کردند و از توشت این ها از توشت لشکر ریختن با اصلاحا و شمشیرها و پیاد سوارشون آنها دو مرتبه آمدند کاملا پیغمبر و صحابه در محاصله شدند. بس رسول علیه السلام زربه خورد و آخر صحابه به این قسمت احد فرار کردند که کوه بزرگیه پیغمبر این حکس مدید که اصلا در معارکه جنگ رسول علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه مان و صحابه این طرف او تلاشی شدن چرا دیگه اینا در محاصر شدن از خوشت خالید با لشکر خودش و زلو جنو تا لشکر دیگر که غلب باشد و میمنه باشد این میسره بود اللہ سبحانه و تعالی نگه وَلَكَدْ صَدَكَكُمُ اللَّهُ خدا راز کرد برای شما وعد خدر هنگامین که شما قط می کردید اون کفارا به اذن الله مرحله اول حمله شروع شد شما قط می کردید آنها آره را به اذن خدا حتی اضافه شلتم شما صف شدید سبب مغلوبیت مومنین در احد شما صف شدید و تنعزاتم سلعام با فرمانده و با فرمان رسول شما خلاف کردید و نا فرمانی کردید در امر رسول با هم اختلاف کردید رومات شما و نا فرمانی کردید در امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد ما اراکم ما توحبون بعد از اینکه دیدید شما چرا که دوست داشتید شما یعنی اون پیروزی را شما نافرمانی کردید سوست شدید نزا کردید بعد از اینکه دیدید من بعد آنچه که دیدید شما آن را آن مات و حبون را دیدید دی یعنی فتح و پیروزی و از شما اراده دنیا داشت این مال غنیمت را صحابه شخص خود نه برای آخرت او بعد از شمار آده آخرت داشت مثل عبداللہ بن جبر و اصحاب کی فرمان رسول را غط نکردن بعد از این حالت سرفکم انهم خدا شمارا از کفر منصرف کرد خلاص اینکه مغلوبیت بطور سزا نبود بلکہ یک آزمائش الہی دید خدا شمارا از آنها منصرف کرد ترالیب تلیکم تا شما را امتحان و کنات این شکست مجازاتی ای نبود این شکستی ای که امتحانی رو خدا شما رازان همون سرف کرد شما مشغول به غنیمت شدید یک دم خالد از پشت وانهاد رو به شما حمله کرده شما در جماعوری می کردید که نمی دانم تجهیز کیه و اون تجهیز کیه شما سرگرد بودید تو همین میدان یک دمان ها حمله کرده از خالد با لشکر جرار از سواران که سو دویست اصب جنگین ها و هفت ست که سربازان آنها لباس آهنی بیتن داشتن که الان شمشیر معمولی و مرد معمولی و تیر برانها اصابت نمی کرد صحابه دویست نفر بود از پوش از هفت ست نفر همه اصطحابه دو تا بودن تو سوار بر اسبها ہو پتا نہیں کیا ہے ثم صرفکما انم خدا تمہارا جان منصر افکار پاک امتحان کند. خلاصہ یہ کہ تمہارا خاند خلاصہ بود بلکہ آزمائش بود ولقد ها ایجاد کا اللہ تعالی با جملہ لقد اپان کو ذهن روافظ را تلخم کن روافظتان می زنن که صحابه خوب دنیا داشتند، لذا فرار کردند. این ها چطور شما صاحبشان در احد فرار کردند؟ بله خطا شد از صحابه اسیتم هم شد از صحابه سنازاتم هم شد لیکن خالق با کسم آنها را بخشید کسم خورد و بخشید که دیگه هیچ راقیزی بر صحابتان نکوند لامو قد بر سر ماضی این برای کسم می آید یعنی اللہ تعالی کسم می خورد والله افارکم خدا شما را بخشید شما که نفرمانی کردید امر رسول این تپر اویل کردید این گناه شما بخشید اکثر همم هم این شدند. کشت که ویل کردن دو رفتن لحاظا خالد آمد از کشت ایستر این چند نفری ایک اینجا اقامت کردن و هشت نفر بودن اینجا هم همینجا شهید کردن وقتی سپاین رفتن به مواجعه آنها همین رومات بودند که این رومات هم اکثر شهید شدند و تعدادی فرار کردن تعالی اللہ تعالی میگه ما شما را بخشیم شما تنازاتم و اسیتم بعدم اللہ تعالی گوه لکدفانكم اللہ تعالی کسب میخورد که شما را بخشی در آخرت مواخذة نمیده نمی کنات نمی اللہ سبحانه و تعالی شما عذاب عزام نمیده در آخرت مواخذة نمی چرا؟ والله ذو فضل علی المومنین اللہ تعالی صحیح فصل خدا شما را ازان هم کرد حضرت و ولا طلبون شما را ازان هم کرد شما ولین حراغات می خدا شما را ازان هم کرد کرد اون لعظی کہ شما بالا می رفتی بطرف کوئی احد ولا طلبون على حدن و بفوشت کسی را هم نمی کردی یعنی گردن تاب نمیدادی به هیچ کسی. در حالی رسول صلی علیه شما را در پشت سر شما. خلاصا، اللّه و تعالى کرد ما شما غمی دار. به سبب غمی که شما به پیغمبر دادر به سبب رسانیدن شما پیغمبر را غم اللہ تعالی شما را زرده داد، همه غنیمت های شما و آنها را آمدند و جمع کردند و بردند این مجازات را خدا کرد فأشابکم غم رسانید به شما غمی به سبب غمی که شما به پیغمبر داد الله سبحانه و تعالی شما را مجازات کرد به این خاطر تا که شما هرچی از دست دادید برانه هم غم نکنی و انت به شما رسید هم غم نکنی. چرا؟ که شما نپرمانی کردید تیغمبر علیه صلاة و السلام شما را دستور داد که اینجا حرکت نکنید شما حرکت کردی. و خدا خبیر است و شما عمل میکنید علاج بود نسخزا تا که ثابت قدم باشید غلبا و این از رفتن مال های غنیمت اینها همه تربیت الهی اند اینها تادیب الهی اند اینها مزاحات و الله خبر داره به ان چه شما عمل می سمه و بعض الله تعالی صحابه بسیار مرون شد حتی شهید شد چقدر زخمی شد خود پیغمبرم زخمی شد و اون نافرمانی اینها کردن که اون گردن را ویل کردن الله سبحانه و تعالی میگه اینه به خاطر اینه که شما را من علاج کنم دیگه مرتبه از فرمان پیغمبر تخطی نکنی جایی که شما را پیغمبر تایم نیکنه و میگه بی هیچ عنوان از حرکت نکنی چرا حرکت کردی الان الله سبحانه و تعالی میگه من شما را دفتگیری کرده در همین میدانی که غم غم از هفتاد شهیده از حضرت رضی الله تعالی او را پیغمبر علیه السلام دید که اسلام هیچ چیزی برای همزان نبسته بود کام شکمش را کرده بودن کلیا و کبد و جگر و غلب و خانه او را بیرون کرده بودن همچنین بر بینی، و گوشه هاش حاله های تنافیلش با همزة خیلی ادایات کردم که اموی پرداز بود. همه ادایات با پیغمبر بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم شد و گفت که اگر خدا من بر اینها مسلط کنند من سینه پر در اوازت و چین خواهم کرد. سینه پر را چینی بالا بیشترش میارم. بعد الله تعالی گفت نه شما اگر میخواید مجازات کنید، بنشرم ما کیتوم بکنید. و اگر نه، اف کنید بهتره. ولی انتظارتون، لهو خیر لصف بعد الله تعالی صحابه غم صحابه را با یک خابی علاج کرد. در همین میدان شمسی رودست صحابه خبره. استاد خاب میزد. بین خواب یک نزول رحمتی در میدان نبرد است. این اس سر قرآن خوابیدن این رحمتی نیست، این گلایدیم شیطان است. لیکن در میدان نبرد خواب یک رحمت الهیه. ثم انزل عليكم من بعد الغم ناظرکن خدا بر شما برای تداوی دل شما بعد از این غم امنتا امنیتی اون امنت مبدل من ہوئے نوعاسن بدل اون امنیت خوابی بود خواب به سبک را نوعاسنی اول چورت که جانگرانی برای انسانیت میاد. بعد که خواب خفیفی که در حد سره، در حد چشمهاه، چشمها بسیار. لذا این خواب مختصر را نوآس میگن. و خواب عمیق که خواب، دیگر نام اون رو نام میگن عربی. اللہ تعالی نازل کرد بر سر شما بعد از این غربشکور یک امنیتی اون امنیت یک خواب صبح کی بود پوشانید این خواب یک دسته را شما یعنی مسلمان همه اونهای که مسلمان های مخلص بودن خواب اینها را گریف و یک طایفهی مغموم کرده بود آنها را نفس آنها در فکر انداخته بود آنها را نفس آنها گمان می کردن اصد به بخدا خدای کریم غیر حق اون هم زن جاهلیات که خلاف وعده سبحان الله حاصل شد. اللہ تعالی گفته وی مشمار نشرت می کنم. Allah نشرت نکرد ماشکس نسبت به خدا بدگمان بودن یا پولون با زبان می گوته اون بدگمانیه. لاله لانا من الامر من شه. آیا بود حس برای ما از امر جنگ و غیره که اختیار ما هیچ اختیاری نداریم؟ قلب و بینهای پیغمبر امر همه به اختیار خدا هست دستور و امر موت و حیات غالبیت و مغلوبیت تمام امور در قبضه قدرت خدا هستند الامر الافلامش استقراکی کله تاکیده تمام امور یعنی فتح و شکست نصرت و شکست غالبیت مغلوبیت شهادت زخمی بودن همه امور به کبز قدرت خدا هستند؟ اللہ تعالی میگه این با زبان چینی میگفتن که ما یک نداریم کشکه میشیم اینها مخفی میکردن در نفس خود آنچه را که ظاهر نمیکردن برای شما کونچے که ظاهر نی این بود که در کلمی گفتن لو کان الا نما اگر ما در امر جنگ یک اختیاری میداس ما قتل رہا ها ہونا شدیم ما در این جا یعنی آنها که کے اجماत्मा کا ما کا شدن بخاطر این کہ شهر شہر مدینہ رو ول کردا شروع کرده وقتی از اگر ما از بیرون نمی آمدیم کسکه نمی بله منافقه هم آمدن یه از از واسه در می وقتی مشرکین هم این ضربه را و فرار کردن دیگه دیگه باقی نمانده یک مقداری که این هر جلو از گفتا اجب ما کاره یک سر نکردیم برگردیم و الان این ها زخمیند اونجا جمعند کارشون سر فرمان سر میکنیم پق که کفر صحابه با وجودی که زخم داشتند، دا و خسته و مانده هم بودن آماده جهات شدن که تاقیب کنن مخصوکیم خوب یکی دیگه گفنه بابا یک فتیه مختصری به نصیب ما شوده تعدادی را کشتیم برگردی همه رو بکشن شما مگه ندیدید که نه؟ حق مرتبه آمدن سر جا روی ناشغا آمدن برای نرفتن یک کجا میری؟ میریم و کچه میسیم از همین به اصطلاح پیروزی مختصر را قریمت اصاب کردند و برگشتند دیگه بر نگشتند که آمدند برنه پیغمبر و صحابه آمادشتند که اینها را تاغیب کنند مقدار هم دنبال اینها رفتند بعد برگشتند و شهده را بعضیه شهده جنازه را انتقال دادند به مدینه منوره به جنت البخی که تقریبا اونجا هم اونا که بلدن نیدانن که سفادای احود تعدادی در جنت الوطی آورده شدن اکثریت انجام آمانده رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشتور داد که انها را درجائی که کشت شدن در همونجا انها را دفنه فی حضرت سید سفادا انجا دفنه و حالا دیوار بزرگی هم نیست دور برشالا حصار کردن دو دیوار کشیدن چون شهر شده بازار شده لیکن اون دیوار هم سهل دیوار کوچکیه بزرگی نیست که حب تادن پر اونجا سهدا هستن ولی حاضر یک و دو سنگ دیده میشه همون وسط زمین در انسان وقت نگامیشه داخل کسیر کسی را نمی داخل کسیر را می گزارن ونین آشخان که در و پانجره بستمیدن برای در و پانجره بستمیدن دیگه ایک کی آمد اونجا درمذا خانی ما رسول اللہ روح روح ما رسول اللہ روح روح اونجا همون حدیثی که از رسول پاک سال سر را زیب همون حدیثی توی تابلو نیست میگم ما رسول اللہ هست ما سبب رسول ما پاته خانم رو بروی اینجا نمی بودن قول بگو پیغمبر علیه السلام همه امور به اختیار خدا هستن اینا مخصیم میکنن در دیل خب من عرض کردم بعد این منافقین هم آمدند و دیگر ورستا آمدند و زنان آمدند دو. خبر رسید بدین منافق خیلی نزدیکه که به یاد دور نیست الان که خب مدینه منوره از میدان احود رفته همون بالای کوئی احود میخواد مدینه بالا بره شهر شده الان یک ذره این کتاب نیست و زمان رفت این کتاب خیلی هم نزدیک دور هم نیست اینجا آمدن به شهده و لحاظا حرف زدن اونا فکین حرفو میزدن که اگر ما خیاری نیداشتیم ما کسطه نمیشتیم اینجا قول بگو پیغمبر بینا من ارس کردم که منافقین همیشه در لیست مؤمنین بودم. یه خاطر الله تعالی که قول بگو برای نهالا کنتم کی بیوتی کن. اگر شما هم در خانه خود قرار میداشید. می داشتید، البته ظاهر می شدم آنهاایی که پر شده بر قاتل تلا مزاجیم به محل شقوت خود. و دیگه این اللہ تعالی امتحان می کند در در فینا شماست و صاف میکنه کند دز و صافیست انترا که در دل شماست چون مومن و وجه مسائب خالق می شاد و اللہ علیم بذات صدور اللہ تعالی علیم بذات صدور اس است لیکن برای دیگر جهانیان اللہ تعالی می ثابت کنه، ثابت کدامان را و امتحان کنه. کنه این کاری که خدا کرد فعل ذالکه لی مساله خسناتهم ولی ابتلاعهم بگی این لیب تلیه متعلقش محضوسه که این کار را خدا کرد فعل ذالکه بخاطر مساله حسنات و بخاطر امتحان تاکه امتحان کند اللہ تعالیٰ عنکی را که در دلش و خالص کند آن ایمان را که در قلبش ما چونکه مومن به وجه مسائب خالص می شود اللہ علیم به دات صدور است و می تواند چطور تدخیر کنند خب اینجا اللہ تعالی فرمود که اپا اللہو انکن این خودش یک تسلی بود برای صحابه حالا منافق شک و صبح داستند و صحابه ملامت می کردند بی خاطر الله و وتعالی دو مرتبه اعلان افرادی کنن ان الَّذِهِينَ تَوَلَّوْ مِنْكُمْ یعنی در جنگ احود آنهایی که گشتن در شما در جنگ احود یوم التقل جمعان روزی که دو جنبا هم غاطی شدن اون عبدالله با منافقت قبلا رفته بود اینمو صحابهی ای که به اصلاح رومات اینجا ویل کردند و بعدش به پشر صحابه به طرف کوبالا رفتند همون چیز را میگه اون های که گشتند از شما روز ایکی ملاقات شدند دو جمع قفار و مومنین در احد اینم استظر لهم و شیطان جز نزک لغزش داد آنها را شیطان به سبب بازان چکانها کشف کردند کشف آنها اینه که اون تپر ویل کردند هم کردنارا که رسول بارشالله مانه ها رو مستقر کرده کسی صحابه در اونجا جا همینه شیطان آنها را لغزش داد که بی ایمان گفتن نه محمدان کات کتل وقتی گفتن نه محمدان کات کتل صحابه سرخیم شدند پس اون هایی که گشتند از میدان نبرد شما روزی که ملاقات شدند دو جام اول اول جو دنیش که لغزش کاد آنها را شیطان به سبب بعضی گناهی که کشم کردن در را ویل کردن خب اعلان افه برای چیه که منافقها گفت شما اینه این اعلان افه و لکد افا اللہ انهم به خدا کسم اللہ بخشیده اف کرده آنها را این لغزش آنها را که آنها در میدان کتال فرار کردند یا در رویل رو کردن این گناه آنها را اللہ تعالی بخشیده کسی را که خدا بخشیده مغفور و بخش خدا را کسی ایراد بگیره و خودش ملامت نیست و راور کسی را ببخشه حالا رئیس زندان نبخشه ملامت نیست صد در سبه خالک کل وقت بخشید اعلان کرد که من خطا شما بخشیدم دو مرتبه هم اعلان کرد الان اگر کسی ایراد بگیرد بر صحابه رسول الله بر اینها او ملامت نیست چقدر درصد ملامته چون کسان را که خدا بخشیده اینها بر بخشیده خدا در اعتراض میکنه اِنَّ الله غَفُورٌ حَلِيمٌ اللَّهَ تَعْلَى بَخْشِنْدَتْ ذُنَاهَا رَمِي بَخْشَدْ و بُرْدُ بَارِهِ بعد از بخشیدن جنت همین آیت مین کنات زج برای منافقین یا ایوها الذین آمنوا اے مومنین لا تکنو کالذین کفروا نباشید شما مثل که کفر کردن مراد منافقینه لیکن قرآن انها را کفر کرد که نفاک در حد کفرش او گفتن ظاهرا برای برادران خود هم مذغب یا هم نسب اینا من عبدالله بن عبیب باشی صد نفر بعد انها چنین گفتن شما مثل انها نباشی که گفتن برای برادران خود یعنی هم و هم بسیله نصب برادران بوی فل برادران آنها سپر میکنن در زمین در کارهای دینی و این اما و اتفاقا موت میشه و غضن یا آنها برادران آنها روزات میشن غض جه یعنی مجاهدند جهاد کنیدند تشکر کردمی شون برادران آنها غضن اتفاقا قتل کردمی شون چه گفتن برای این برادرانی که مسافرت میرند و اتفاقا موت میاد یا مجاهدن دو اتفاقا موت میاد و کاتل کرده میشون این این چیز را گفتن که و اندنا ماماتو اگر اینها نزد مامی بودن در مدینه و برای جهاد نمی رفتن ماماتو نمی مردن و ما کتلو کشت نمی شدن تدادی انسان در جهاد میره لشکری بیمزرگی بزرگی ها مریف نیشن می میرن بعضی ها سکتا کنن می میرن این موته ولی مگه این سکتا در اختیار انسان است سکتا در اختیار انسان است در اختیار, اختیار؟ ولی چاست سکتا چیشن زهرترک این افترس نیست غیر اختیاری شما مثل آنها نباشید که گفتن برای برادران خود وقتی مسافر میشن در زمین برای کارهای دینی و اتفاق موت میاد یا مجاہدند و میشن گفتن اگر آنها نظامی بودن نمی مردن کشتنه میشدن شما این طور نباشید چرا که اللہ تعالی این اعتقاد را در دلانها انداخت القى الله ذلك الاعتقاد في قلوبهم بر ان كه بكند تعالی اين را حسرت و آرمان در دلانا خیال را خدا در دلان انداخت جهان اگر خب ما و اللہ سبحانه و میگه: الله ذلك الّيتقادة في قلوبهم، ليجعل الله ذلك خصّصاً في قلوبهم. إن متعلقش مهزوب، الله ذلك الّيتقاذ، تاکین حسرتی بکنه در دلانها. و جواب حقیقینه که الله یهی و یمید اللہ که جان میدهد در سفر و در هزار و در جنگ و در عمر جان دهنده اللہ است. یمیت کشنده هم قبض روح کننده اللہ جان رمی گیرد اللہ به ما تعملون بشیر ترغیر توبه هستان چی که شما عمل خدا بشیر توبه کنید، این هر حرفاید شما میزنی جواب ثانی و بشارت اللہ تعالیٰ می فرماید لئن قتلتم فی سبیل اللہ اگر شما کشت شوید مؤمنین در راہ الله او مطم یا در راہ خدا بمیرید بموت تبی تو فلا تحزن جزا مقدر ہے شما غم نکنید چرا؟ که علت لا تغروه که بخشی از خدا به شما میرسد رحمتی از خدا به شما میرسد خیر و ما یجمعون به درجه بهتر است از آن مال و مطا و زندگی که انسان جمع می کنه. زندگان جمع می کند همین درش رو بهتره به هر حال اگر شما در راه خدا کشته شدید شما در راه خدا موت داده شدید فلا تخزنو شما غم نکنید چرا که بخشش از خدا رحمت هایی از خدا که به مجاهدین میرسند و به رانه که در راه خدا می میرن به درجه ها بهتن از آنچه که انسان حجم میکنند و باست هم اگر در این دنیا به شما هم چیزی گیر نامد پس حشر شما به خدا اگر شما بمیری یا کشت شوید بمیری موت داده شوید یا کشت شوید و شهید شوید لَإلَى اللَّهِ تَحْسَرُونَ با مرگ و با شهادت شما به خدا حشر کرده میشید شما به بارگه اللَّهِ سُبْحَسَرُونَ لَإلَى اللَّهِ تَحْسَرُونَ خَلَمْ تَسَلِّی برای اصحاب پیغمبر تسلی برای اصحاب پیغمبر و آن اینه که خدا نبی رحمت و مهربان به شما انایت کرده اگر این نبی مثل فرماندهان دیگری خشن می بود، همه شما را مجازات کرد که شما در میدان فرار کردید اسوس ادونو ولا تلبون کردید در را ویل کردید خب سرباز وقت تختی کنه مجازات میکنه نمی کنه؟ شد درست مجازات می کنید لیکن نبی رحمتی کسی شمار مجازات می کنید فَبِمَا رَحْمَتٍ من اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ما زایده با سببیه بسبب بس رحمتی کرد خدا در قلب و جان شما بوده پیغمبر نرم شدید شما برای این پراری اگر شما می بودی فضلا سیع الخلق بد اخلاق غلید القلب سخت دل، تو لن من حالکا اینها پرار می کرد شما و می اینها فرار بھی کردن می رفتند از غور این علوم و از کجا آمی رسید جازه این علوم، این فیوز، این اعتقاد حسن لگای پیغمبر فاپو شما هم اف بفرمایید خوب حق رسول اللہ انجازائی شد فرمان رسول اللہ غاد شد پیغمبر دندان مبارک شهید شد شهرش اون شد خب این به خاطر اون نافرمانی صحابه شد دیگه سبب اونه اللہ تعالی میگه شما اف بفرمایی فاپو انهم اپ بفرما از دل در حق خدا از حرکات مناسب آنا وستغفر لهم او آمور زش بخواد در باره حق خدا برای آنا برای آنا هم آمور زش خدا را نفرمانی کردن شما را نفرمانی کردن شما حق خود را موافق کنید و از خدا بر انا بخشش بخواید و دیگر و هم فل امر مشوره بگیرین در امر دین اینها را مشیر خود قرار بگیرین مشوره اسلام حبت میکن. اگر یک انسان بزرگ از یک انسان کوچک خصوصا مشوره بگیرد دو کار دارم خب چقدر اون انسان کوچک به هم میبالد که بابا من کسی هستم که فلانی از من مشوره گیرد او کار خودش را انجام میده لیکن همین مشورت علفت, علفت میارد رحفت میارد رحمت میارد چقدر محبت برقرار میشه این خاطر اللہ تعالیٰ به دستور سابق قبل اینا مشیر شما بودن الان از معذر طرف نکنی در از این هم مشوره بگیره پیغمبر لیکن بعد از مشوره وقت تصمیم تو کتی شد برای هر کاری برای جهادی جبهی سفری تو اعتماد فقط بر خدا بکن لا ال مشوره بر مشوره اعتماد نکن اعتماد بر خدا باشد مشوره بگیر این را مشیر خود قرار بده اناللہ هیو حب المتوکلین الله تعالی دوست دارد آنهای را که به خدا توکل دارد خیزانه حسرت فتح و نشرت حسرت خدایی خوزلان همه صرف خدایی خوزلان اینه که تب عدم اگر شماره نصرت کنند خدا تعالا پس غال دیگری برای شما بر شما قلب کند و اگر خدا شماره راحت کنند یعنی مغلوب کردند کیه اونا گاهی نصرت کنا شماره بعد از راحت کردن خدا خزلان خدا خزلان یا خزلکم یعنی مغلوب کردند دف نصرت، اد می نصرت. این موقع نصرت کسی دیگری رویل کند این یه خزلان اگر نصرت شماره خدا ویل کند تو کیه بعد از خدا تو شماره نصرت کند خلاصا دستور عمل اینه وَالَلَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ بر خدا بعد اعتماد ترعو کنن مومنین این منت دوم نبی امین منت اول بر صحابت بود احسان اول نبی رحمت شما رحمت من الله لنت لهم. با رحمتی که خدا بر شما کرده تو قلب شما پیغمبر شما برای این فراریها نرم شدید. اگر شما فرزندی میشید حالا نعمت مننت دوم نبی امین نبی امین است در مال غنیمت و غیر خیانت نمی کند. همه نبی امینم. این هم نبی امین مننت دوم الهیه. که بر صحابه شان نزول آیه این سر و لا که بازیه فکر کردن مقدار از غنیمت را پیغمبر علیه السلام برداشت. یا یک چادر مخصوصی گم شد بعضی فکر کردن که شاید این چادر را پیغمبر علیه السلام برای خودش برداشته الله سبحانه و تعالی این چیز را می کند که امکان ندارد که پیغمبر غلول کند غلول یعنی مال غنیمت را قبل از تقسیم بردن چه رسول پاسته سلام اختیاردار تقسیم است امیر مومنان هم اختیاردار تقسیم مال غنیمته بین خاطر الله سبحانه وتعالی میگه که امکان ندارد که پیغمبر غلول کند ما کان لنبیین امکان ندارد برای هیچ پیغمبری که غلول کنات مال غنیمت را بدوزد مال غنیمت را دوزدیدن عرب نگه غلول این یا غلل حس وچه را انه لطه امکان ندارد دین خاطر که من یا غلول هر کمال غنیمت را بدوزدی یاتی بها بما غل یوم القیامت می آرد مال غنیمت را کی دوزدی در روز سیامت در میدان محشان تو پیغمبر امکان نہ دارد چنک اگر کسی مال غلولی کی ببری روز سیامت را می آرد باست کامل جزا داده می شود هر نفسی به مقابل کس و هم لایر ظلمون و این نفسهایی جررم ظلم کرده نمی شود که حسنات آنا بپای شاب نیاد یا شیعات مضاعف می فمن اتبار اضوان الله بشارت اخری برای نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کسی که اتبا رضای خدا را یعنی نبی کریم صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کتاب رضای خدا است نیتونه بشیم مصر کسی که رجوع کرده بنارازگی از خدا یعنی خائن خائن کسی که او باب سخت من اللہ ومعواه النار و جای اون که رجوع بشخط و غضب خدا کرده جای او جهنم است و بیش المشید شدت و مظامت جهنم بیترین جای بازگست جهنم پرسته هم درجاتون این دلاله این متبین و مغذوبین آنهایی که خدا رضای خدا را طلب میکنن و آنهایی که به غذب خدا بر یعنی عدم رضای خدا را طلب میکنن برای هر دو گروه درجاتی هست مختلف لهم درجاتون هم به معنی چیه؟ لهم برای این هر دو گروه تابعین رضای خدا و اونایی که باو و بسکته من الله دارای درجات مختلفی هستند نزد الله و الله بصیر بهان چیزها عمل کردند مننت سیو نبی هم نو و جم ہم جنس الله سبحانہ و تعالی نبی رحمت اسماعیل آیت کرده نبی امین فی شما این کرده و بعض نبی که هم نو و هم جنس فی شما مثل شما عربی مثل شما انسانیه ولی هزا و استفاده از این نبی که هم نو و هم جنس و هم زبان شماست آسانه وگرنه این طور استفاده از هم جنس و هم آسان می شود. دونی که ہم جنس و ہم نوع نس انسان انسا ای نمیشه این مننت خوام نبی ہم نوع ہم جنس است لقد من الله على الْمُؤْمِنِينَ بِتَعْقِقِ احسان کرده خدا بر مؤمنان هنگامی که مبوش کرده در نیان مؤمنان رسولی بسیار عظیم الشان از نفس آنا، از خود آنها عربی و از جنس آنا هم فامی لاناس قُلْ حِلِهِ عظیم و تعلیم دادن کا کتاب و, و الله این و مولا باکر و معلیمان ها در کما در آخری نقطه کما شاگردان محمد آمد شاگردان خداست آمد شاگردان قولی که نو بگیلانه که شاگردان محمد در دل شنان در آنیم محمد در تردیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایراد میدیران الله می دیه خدا از نوی آنها می پیش بیه این اشخاص بزرگ خدا اذباستیم رسول منو کرد با خدا با عنوان سکیل کرد نت الله نونی تکیلاتی مولا همه سنده که آخون در نگاه در شد شد این قرآن و با بدر جوابه گوی از والله احسان ادوان خدا دیار کرده شد بر مومنی که رسولی حدیموسان از زیر کارو همان اگر بشریت شریعت بر پیغمبر را کرده امکار کنه اولون را تبعیم نیکنیم در پاکستان شریعت رسول الله الکرب یہ کہ دے اگر رسالت پیغمبر قبول لیکن قبول میکنی قال اخي میگه حکم نادے کوپس خوب نخطر نہ حاجه قران رہنتا لیکن به صحابت قرآنی را دید خدا این آلا بادت دیشتی رسول الله هدایت اکنون که در میدان احود شکر تیامت تابت عذوب کرده اول اما اطلابت و مخیبتون تنگانی که بشمال اکیت مخیبتی در احود حبتاد نفر شهید حالا خوانی سماء دو برابر اون مخیبت دو برام ها رفت کرده بودی در بود حبتاد پسته بودید حبتاد افیر کرده بودید وقال اصابتون مثلی شما سماء رفتانی بودید دو برابر اون مخیبت دوست دار من دارده دو بودید قلتون شما گفتید انا ها قدر کجا بردی مخیبت تا عجبا میکر اولین جواب کل هوا میلید دارد دیگو این مخیبت اطرق نقصه شما آمد گردنان رو کردی، دشمن شما را تا محاطره کرادا ات پوست هم دوسمان اگلو هر طرف شرک برای شما و جانب شما بود که در نمره کرد و خدا بر آرشه کادر شما را هم که همراه رسول الله بودی خدا شهید کرد مصیبت داد خدا قادر دوستان دوستان را هم مسیب می‌رساند یه جواب جواب تسلیش و به فرمان خدا آمده بر موزیبه خوب به خدا ایتراشو نردید تو شما یوم التقال <سؤال> جمعه محبتی ما اصلاب اتخون یوم التقال <سؤال> جمعه با ازنی اللہ آنکه به شما ردید بودی ملابات اتجام هر ترسیمگی و فراد هر شهاده در مدار او به امر خدا بوده سبب اتفی امر خدا بودی سبب زاہری کسی شما بودی و دیگه حکمت در میدان و دیگه شما رئیس منافقین با در میدان یک خطای مرتکب را خدا شماره شهید کرد. الان دو شما دجم شدید و اگر اگر امیت آن ران نداری تو یہاں بکر دعا پر بس یعنی سیاهی لشکر بس بکر سیاهی لشکر دعا پر بس قال الگبتر منافقین لون آرام ابلطار الانتبان اگر ماینا جنگی می جنگی می تو خود کشی ہے اگر ماینا جنگی می دانش بی تو ما نی آمدی یعنی جنگی بلکه یک اذاب خودشیه. خوب این منافقین به کف آن روز نزدیکتر از آنها بی ایمان، اینها به کف روز از ایمان نزدیکترند. خوب متوجه لیف کف روز و انتخاب این جواب خوش کتال، جواب خوشیدان، تأخیر دادن، آنها به کف نَرْفِقْتَنَ از آنها بی ایمان بقو نَرْفِقْتَنَ از ایمانا نیگو یا بی سوان آن قوط انسلات ای درده ایمان یا نما هم قادلی مستن مان نمی قایل باشی انسی دیر آنهای با زبان بیمان این چنگی نمی داری. ما اما چنگ بلدنی دارم اگر ما جن بله می‌دونیم یا این را جنگی میدانیم نمی‌رویم که در دل این اراده که زمان مامو سلمان آن کاری نمی‌توانیم که دل که در دیگو چیزها بیتر که بروت این سو پر شیلی در جامعه شریف نختاب دارم ندار یکولون ما لیتر یکولون در اقوائی مالی تبیی بلو بیتر من باور کنیم از بار تشکیش می که همین آی دیگتار سیم اکثریت اچتا یکی انسان آمیشتا کنیم بعد ان چیز آنگی تجیل آنها اللہ که زبانا دلون آنگا ایت چیزی نید. والله اللہ تعالی از آن که خرمان و خرمان از ایک طرف باقاف این حلقات مرگ و خلو کشور ایام شیکا آماده است که ثبت کند. باید ما همه باشیم. اگر ما نه انسخاب، همه ما متقاعد باشیم. ملله، امام ما ملله گوش کشیم کرد. همه ما متقاعد باشیم. دیگر طرف باشیم و رای گیری هم و اگر تنید آئی کافر را پس این جمهور اگر کافر اللہ کافر صدام بگه نه ما گفته چیگونه خیلی پیش میله یا کوچونه ما لذتی کلی اگر نامی که اون یه روز ما تاری اگر برنامه کو پیش قَالَ نَائِمٌ بَرَأَى رَجُلًا كَافِرًا هاو ما ليس في قلوبهم ما ان وَتَبَذَّلَ مِنْهُمُ اللَّوْنُ لَوْلَا أَن قَتَرَنَ لَطَبَعْنَا بَدَلَ أَزَلَ الَّذِينَ نَافَقُوا إِنَّ الَّذِينَ بَدَلَ أَصْلُ ألأ الَّذِينَ نَافَقُوا اللَّهُ تَعَالَى هَذَا بَارِزٌ مُنْتَقَصُ الْمُنَافِقِينَ وَمُنْتَقَصُ الَّذِينَ نَافَقُوا بِدَارِهِم إِنَّ الَّذِينَ نَافَقُوا كَثِيرٌ مِّنَ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ منابک آونا ما بودن که برادانه نخریه و اتنیه خود گفتن دهانی که خودان آزار مدینه نشارتن لو عطا آونا ما بودن اگر این بیشتر مستن اصلاف مستن اگر ایمار اطاعتنی کردن بیرن منی گفتن اشکال آلات مدینه اللہ تعالی خاصی قول بین فادر و فرزندان رو تکمل بود پر اگر شما نیگی در مدینه ماندن مرگ نمی آمد کوسا نمیشودن تو الان مرگ را از خودتان دف کنید دف کنی مرگ را از خودتان الخلق فادکین اگر در مدینه نشد تن مرگ نمی آید کاظم تو مرگ را خود دف کنی روی نہ ہوا تیو ما قال بوہ دی مکالۃ تکون منافقن ودارک ترک یہ لا رحباً الذين قتلوا في سبيل الله ابو آقا قمان أنا هاي راب کہ قسط در راه خدا در دامنه اهد مرده معمولی مثل مردگان اهد مرده نستن چه ربا مجبه بل اعجاب ندرم ده ان هم نرد خود زندان به یک حیاتی بسیار منطق یرد کنن رس دانن شرط فریدین بسیار خوشحانا شهدائی دامنه اوهود خدا دار و عطا دا دار فجل خودش درجات خور و خوشحالی کنن برای اون و منینی که هنو فانها لائق نشدن بقاطن که زندان در دنیا هستن هت خوش بسیاره کن و آن که الله خوفان ولا و ناخودیکنند، تعداد استعمال از آن لذیل نمیاره که به هم میخالدی خوفی نیست برای من الله فرد، اون نیمتی فضل الله و اینکه الله را اخلاف خوشحال یک ترشیرون پر احساس شریف آمده که انواعی مومنی در صورت پرنده در بحشت فیرمی گیر شد لیه از رحمان خدا گو بلقایی تو آخری الله طلا اقرار کرد که بخواد کوکی نمیخواین از تروده ارواحان علیا اشترانه ارواح ما را به اشتری ما برگردان تا بریم دوکری الله روانم گفته که خوشحاله رست دادن دا میشم و رسول الله چنین تأیید کرد که در جنات شهدا دارن لذت دا هم دا اراده قانون بیت ملک را واداشت داده دو شما در دو مردم. بلکه بدل آن کن یک ترشیونه بیل به من خلفیم که خوفی بر خود آنها نخواهند آنها مکن میشند خوشحالا بی نعمت خدا و فاقی معلومی ایشتی و برای این مطلب که آخر دعوانا